خب بسم الله الرحمن الرحیم باب الفروز باب فرزا ما گفتیم یه شخص یا الراه تعصیب ارس میبره یا الراه فرز خب ولی در میراس اولین کاری که شما میکنی اون صاحب فروز و سهم میدی چیزی باقیمون عصبه ها اونو بر میدارن ها خودشون اولویت بندی دارن که در همین کتاب خودشون اولویت بندی رو ذکر میکنه مثلا شخصی مرده فرزند داره فرزند از راه ارس میبره امو هم از راه اسب گیرس میبری؟ یک امو داره یک پسر اینجا دیگه پسر ها اولویت داره اونجا اولویت بندی اونا رو جلو بیاره بحثونو ما بحث فروز هستیم یعنی اونایی که دارای فرضهایی که در قرآن تعیین شدند بعدا اونایی که این فرضها رو هم میبرند تعیین شدند ها؟ حالا فروز رو میخونیم هایی که تعیین شدند باب الفروز باب فروز وفروز المواري في ستة فارزهاية الساهمهاية ميراس ششتا هستند النصف يك دوفوم والربع يك تاروم الثمن يك حشتوم. الثلثان دوسيفوم الثلث يك سيفوم السدوس يعني كل سهمها که تعیین شدند اینها هستند کل صحنه هایی که تعیین شدند حالا در بحث اجتهاد فقه ها که اومدن چه فقه های صحابه چه بعدی ها مثلا یک سوم باقی داریم که اونجا توزیع اثر بحث اومد ما کاری نداریم این فروزی که تاین شدند ها اینها هستند یک س... یک دو یک چارومو یک هشتم دو سومو یک سهمو یک ششم پس صاحبان فرض یکی از این فرض ها براشون شده که اینا رو هم با هم خواهیم خوند. حالا شروع میکنه. فا اما نصف فا فرضو میگه یک دوم سهم پنج نفره. پنج نفر سهمشون در شریعت سهمشون چقدره؟ نصفه یک دوم ماله. فرضو البنت ایذن فردت. دختر زمانی که یک نفر باشه. شخصی مرده یک دختر داره و یک مادر داره. اینجا دختر سهمش چقدره؟ پس اگر یک نفر بوده پس یک دوم سهم پنج نفره یک فرض البنت ایذن فردت نصیب دختر زمانی که تنها باشه و فرض بنت الابن این دا و سهم دختر پسر زمانی که ولی دختر وجودی نداشته باشه و تنها باشه البته بنت الابن پس دختر پسر سهمش یک دوم زمانی که ولی ما دختر نداشته باشه و فرض الاخت من الاب والام اذا فرادت و دیگه فرض چی کسی هست فرض خواهر پدر و مادری زمانی که خوهر شخصی فوت کرده یک خواهر پدر و مادری داره یک خوهر شقیقه داره اینجا سهم خواهر یک دوم ماله ولی با شرائطی که وجود داره و تفصیلاتی که عصبه نداشته باشه که اونو بیاد عصبه بکنه تعدادشی یک نفر باشه ساقط کننده ای هم نداشته باشه و فرض الاختی من الابی انده عدمی ها دیگه یک دوم سهم که فرض خواهر پدریه انده عدمی ها زمانی که میت خواهر شقیق نداشته باشه خواهر پدر و مادری نداشته باشه اینها به اخت من الابو و الام برمی من انده عدمی ها متفاده شدی این زمیر؟ و فرض زوج زوجی اذا لم یحجب و سهمیه شوهر هست زمانی که محجوب نشه منظور حجب نقصانه محجوب کامل نمیشه ما قبلا خوندیم که شوهر یکی از اون برای یک ساقت کامل کسی از بران اونو ساقت باله پس شوهر هم سهمش یک دومه از زنش زمانی که زنش فرزند نداشته باشه معنی این جمله به صادقی اینا ازالم ای یحجب یعنی زمانی که محجوب نشه یعنی زمانی که فرزندان زنش اونو از یک دوم نبرند به یک چارم چون اگه زن شوهر بچه داشته باشه اون شوهر دیگه اون موقع یک دوم نمیبره اون موقع حجبه نقصان میشه ما دو حج داریم حج نقصان و حرمان ها بس به نقصان شد یک دوم که تعیین شده سهم این پنج نفره دختر تنها باشه دختر دختر با اون شرطی که گفت خواهر پدر و مادری خواهر پدری با اون شرطی که گفت و شوهر اینا چقدر میبرند <تصفيق> یک دوم و اما ربع فرضو اثنینی اما یک چهارم یک چهارم مال سهم دو دو نفره فقط فرض و زوج فرض شوهر سهم شوهر یک دوومه اذا کان للمیت ولد او ولد و ابل زمانی که میته یعنی زنش که فوت کرده فرزند یا فرزند فرزند داشته باشه در این حالت شوهر یک چارم میبره و فرض و او زوجت اذا لم یحجب نه و دومین کسی که یک چارم میبره یک زن یا زنهای بیشتر مال شوهر هستند البته زمانی که حجب نقصان نشوند زمانی که اون شوهر فرزند نداشته باشه چون اگه شوهر فرزند داشته باشه دیگه سهم زنان میره روی یک هشتم میره روی چی؟ پس یک چهارم شد سهم دو نفر سهم شوهر زمانی که زنش فرزند نداشته باشه سهم زن یا زنان زمانی که شوهر فرزند نداشته باشه و اما ثمنو ففرزو زوجتی او زوجات اذا کان للمیتی ولد او ولد ابنن اما یک هشتم فرض فقط یک گروه زنه یا زنان آه میت دگه یک زن داشته باشه زنای بیشتری داشته فرقی نمیکنه سهمشون همون یکی پس یک هشتم سهمه فقط که زنانه زنان میت حالا چه یکی باشه چه تا؟ چه دوتا ازاکار للمیتی ولد او ولد ابن چه زمانی زن از شوهرش یک هشتم میبره زمانی که شوهر فرزند یا فرزند فرزند داشته باشه در این حالت اون زن از شوهرش یک هشتم میبره و اما ثلثان ففردو اربعین اما دو سه وم سهم چهار گروه. اما چقدر؟ دو دو سوم از یک دو بیشتره یا نه؟ به نظرت دو سه بیشتره یا یک دو نهدی که دو سوم بیشتره میدونی چطوری؟ شما دو سوم اینه که اون مال و سه جا بکنی بعدا دو تاش رو برداری دو قسمتشو در یک دوم دو یکی رو برمیداره خب دو سوم فرض چهار نفره فرض بنتی فسااعدن فرض دو دختر با و بالاتر خب چرا بیشتره؟ خب ببین موقعی که دختر یکی یک دهم میبره ولی بیشتر که شدن سهمشون بیشتر میشه ادالت راحت بشه نه موقعی که بیشتر میشن دو سهوم میبرند موقعی که یک نفره دختر یک دهم سهمش دو دختر داشت میت سهمشون میشه دو سهوم دو سهوم پس بیشتره دیگه شخص باره. پس دو سهوم فرض 4 نفره فرض دو دختر با بالاتر و فرض بنتی الابن فصاعدا و فرض دو دختر پسر رو بالاتر چه دو, دو بالاتر مال پسر میت چه دختران خود میت باشند چه دختران پسرش باشند اذا كنا مع بنات اصلب خوب اینجا میگه فرز البنتینی فسائدن دو سوم فرز دو دختر و بالاتر البته زمانی که اون شرایط رو داشته باشن یعنی برادر نداشته باشن چون اگه برادر داشته باشن این چکار میکنند اصابه میکنند اون موقع لذکر مثل حد الانسین میشه مرد دو برابر خواهرش میبره بله وفرض بنتي الابن فصاعدا إذا كنا مع بنات الصلب إن جملة موه مشكل ندري مالش مو شنو ايش نيشته اني شي مشتين؟ ما يدخل على ريمه نوشته ينه ها همشي شنو نيشته وفرض بنتي بنتي ابن فصاعدا إذا خب. كنا مع بنات الصلب وفرض الاختين فصاعدا ولی این جمله اینجا ایراد داره این جمله این آخر اگر بنت با بنت ابن باشه اون موقع دو سوم نمیبره جمله اینجوری درسته دو سوم فرض دو دختر هستو بالاتر و فرضو بنت ابن فصائدن و سهمیه دو دختر پسر یعنی میت پسری داشته که اون پسر فوت کرده و دو دختر داره یا بیشتر داره فرقی نمی کنه سهمیهشون میشه شه؟ دو سيفوم اگر خود میت دختر داشته باشه که اینا دو سيفوم نمیبرند اگر میت یک دختر داشته باشه که اینا یک شیشوم میبرند بیشتر داشته باشه که اینا اصلا نمیبرند. این جمله اینجا مشکل اینجوری درست می شودا زمانی که همراه اینها بنات الصلب نباشه اینجا نوشته اذا کن مع بنات الصلب اشتباهی و وفرز الاختین فصاعدا من الاب والام الام و سهمیه دخاهر و و دو دختار و بالاتر از پدر و مادر يعني سهمية دو تخاهر شقيقهم دو سفومه و فرض الاختين من الاب فصاعدا و سهمية دو خاهر پداريهم و ببالاتر دو خاهر و بالاتر يعني سه خاهر چارا خاهر بعضهم پداري دو سفومه مبرن ولی اذا عدم, عدم الاخوات من الاب و الام زمانی که پدر و مادری نباشن اونجا اکاش که همین جوری نوشته بود اذا عدمه بنات سلبی یعنی خاهران پس دختران پسر زمانی دو سوفم میبرند که خا... که دختر سلب نداشته باشه میت جمله قبلی به اینجوری میگیم و فرض و ابنت الابن فصاعدن اذا عدم بنات الصلب ها اینجوری درست میشه پس دوسهون سهمیه چار نفره زمانی که دو خواهر و بیشتر بودند البته به شرطی که برادر نداشته باشند زمانی که دو خواهر پسر باشند یک برادر نداشته باشند دو میت خواهر نداشته باشه چی میگم میت خودش دختر نداشته باشه البته اگر یک دختر داشت اینا یک شیشوم میبرند ولی اگر از دو دختر به بالا داشت دیگه اون موقع دختران پسر چیزی نمیبرند اگر مید که پسر داشته باشه که اصلا نمیبرند کتاب گفتم مفصل بحث نکرده یعنی اگه خیلی باهوش باشه میفهمه تمام مسائلو ازش ولی اونجوری مفصل هم توضیح خیلی خیلی مختصر توضیح داد پس خلاصه ما اورایی رو که دو سوم سهمشون هست دو نام میبریم دو تا دختر و بیشتر از دو دختر با شرایطی که هست فرض دو دختر پسر با شرایطی که هست فرض دو خواهر پدر و مادری و بالاتر دو خواهر پدری البته با شرایطی که هست خواهر حقیقی نداشته باشه برادر نداشته باشه حقیقی خود اینا برادر نداشته باشند اون موقع عصبه میشن با برادران شد اینا رو گفته اینا رو گفته دیگه اینجا بخاطرین تکرار نکرده پس اینا شدند چهار نفر که سهمشون دو سه ومه میراسه و اما ثلث ففرزو اثنینی اما یک سه سهم دو نفر است اما یک سوم سهم چند نفر است بله سهم کیه دو نفر یک مادر فرض الام اذا لم تحجب سهمیه مادر زمانی که حجب, حجب حجب نشه ولی قبلا گفتیم منظور از حجب حجب نقصان یعنی چون مادر دو سهم داره یک یک سوم داره و یک ششم نقصان بشه منظورش سهمش از یک سوم که بیشتره میره به روی یک ششم میره روی بله زمانی که میت فرزند داشته باشه مادر میره میگیره یک شیشون زمانی که میت برادر و خواهر داشته باشه دو تا بالاتر اون موقع باز هم مادر میگیره چقدر یک شیشون پس یک سوم فرض دو گروه هست یکی مادر ولی زمانی که حد و نقصان نشه و فرز الاثنینی فصاعدا من الاخوت لام و سهمیه دوتا و بالاتر از دوتا از برادران و خاهران مادری یعنی اگه شخصی مورد برادر و خاهر مادری داره اگر یکی داره فقط یک سوفم میبره چی میگم؟ یک شیشم میبره چقدر میبره؟ یکی به بالاتر بود اون موقع یک سوم. پس یک سوم شد سهم کی سهم دو گروه یکی مادر زمانی که حجم نقصان بشه که بعدا جلوتر اینا را البته بیان میکنه چه زمان مادر سهمش این میشه. بله در زیر, در زیر همین شماره بیان می کنه زمانی که مادر چی موقع یک شیشم می بره پس یک ثوم شد سهم دو نفر یک مادر با شرایطی که در شماره بعدی بیان می کنه روی یک شیشم دو فرزندان مادر زمانی که دو نفر رو به بالا باشن چون اگر فرزندان مادر یک نفر بود اون موقع چقدر می بره یک شیشم می بره چون یک شیشم کمتره از یک سومه یک نفر باشه فرزند مادر یک شیشون میبره دو تاکه شدن دو بالاتر میشن چند؟ یک سووم, یک سووم. پس یک سوم شد سهم دو نفر مادر و فرزندان مادر فرزندان مادر چکاره میت میشن؟ برادر و خوهره مادریش دیگه برادر و خواهرای یعنی یک میتی مورد یک برادر و خواهر داره که فقط از طرف مادر برادر و خوهرشن اینا رو میگن اولاد اوم این میگن اولاد فرزندان مادر اگه یک نفر بود میبره یک ششم دو بالاتر بودن میبرند یک سوام و اما صدف فرز و سبعت اما یک ششم فرض هفت نفر است فرز چند نفر؟ فرز الابی فرض پدر زوجياتكمت او الجد يا جد فرض الأمي مع الحجب بالولد وولد الابن وباثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات فرض مادر شلون مادر يا 1/6 ميبره يا 1 يبره م 1/6م زمان الان ميجا سهم مادر 1 است زماني ك محجوب حجب نقصان شود با فرزند میت یا فرز... فرزند فرزند میت یعنی میت فرزند داشت اینجا مادر میبره یک شیشم یا اینکه نه دو تا برادر یا دو تا خواهر میت یا بیشتر داشت اینجا هم مادر سهمش چقدره یک شیشمه و فرز الجدتی اول جدات سهمیه یک مادر بزرگ یا مادر بزرگای دیگر سهمشون چقدره یک شیشم و فرض بنت الابن او بنات الابن مع بنت الصلب فرض دختر پسر یا دختران پسر یک شیشومه زمانی که میت دختر داشته باشه خودش تی داشته باشه؟ دختر داشته باشه پس فرض فرز دختر پسر میت مرده یک پسری داشته اون پسر مرده ولی دختر داره اگر اینجا پسر دختر, دختر دختر پسر چی میگم دختران پسر دختران پسر اگر خود اون میت دختر داشته باشه یک نفر البته اینجا دختران پسر یک شیشوم سهمش تکمیله للثلثین که در میراث بس پس همینا چون سهم دختر نهایتش دو 3 دیگه موقعی که میت خودش یک دختر داره دخترش میبره یک دوم الان دختر پسر هم داره چقدر باقی مونده که یک دوم بشه دو سوم یک ششم یک شیشم دیگه باقی میمونه اون یک شیشون به دختران پسر میدان پس دختران پسر یک شیشم میبرند زمانی که میت خودش یک دختر داشته باشد اگه پسر داشته باشه که اینا نمیبرند اگه دوتا دختر هم داشته باشه اینا دیگه نمیبرند فرض عخت اول اخوات لاب معخت واحدتی الواحده لابن و, و همچنینین یک خواهر یا خواهران پدری یکشیشون میبرند زمانی که میت خودش یک خواهر پدر و مادری داشته باشه. ببین اینجا دقت کن شخصی فوت کرده یک خواهر شقیقه داره این خواهر پدر و مادری یک خواهر پدری فقط داره. اینجا خواهر پدر و مادری، خواهر شقیقه یک دوم میبره خواهر پدری یک شیشم میبره ولی اگر خواهرهای پدر و مادری دوتا بودن دیگه خواهر پدری چیزی گیرش نمیاد و فرض الواحدی من ولد الام و اگر شخص فوت کرد یک خواهر یا یک برادر مادری داشت اون موقع یک شیشم میبره اگه بیشتر بودن چقدر می بردن؟ یک سوم. در بحث یک سوم خوندیم. چون یک سوم سهم دو نفر بود. یکی مادر زمانی که مادر فرزند داشت یا دوتا خواهر و برادر داشت. مادر میشه برد؟ نه. ببین زمانی که مادر میت فرزند داشته باشه یا دوتا خوهر و برادر داشته باشه مادر یک شیشون می بره. اینا رو نداشته باشه مادر یک سوم می بره. همچونین فرزندان مادر فرزندان مادر که برادر و خواهرای مادری میت حساب میشند اینها هم اگر یک نفر بودند یک شیشم میبرند ولی بیشتر از یک نفر بودند یک سوم ایراس میبرند پس فرزندان مادر اگر یک نفر بود یک شیشم به گیرش میاد ولی اگر بیشتر بودند یک سوم پس یک شیشم سهمشون میگیم سهم یک شیشم سهم پدر و پدر بزرگ یا پدر بزرگ سهم مادر زمانی که میت فرزند داشته باشه یا دوتا خواهر و برادر داشته باشه و بیشتر سه سهم مادر بزرگ یا مادر مادر بزرگان چهار سهم دختر پسر زمانی که میت یک دختر داشته باشه فقط پنج سهم خواهر پدری زمانی که میت یک خواهر برادرو زمانی که میت یک خواهر پدر و مادری داشته باشه یک خواهر شقیق داشته باشه و شیش ولد ام زمانی که تنها باشه اینها شیش نفر بودند که سهمشون چی بود یک شیشون بود تا همین کار اکتفا میکنیم ان جعل بعدي دي باقي يشرب خلية.